شامیلک این داستان نقلیست از بانو شهرزاد قهرمانی از کرمانشاه لازم به ذکره که در زبان کردی به هندبونه گرد و کوچیک شامیلک میگن روزی بود و روزگاری بود مرد کشاورزی کنار همسرش توی خونه قدیمی و کوچیک توی دهکده زندگی میکردند مرد کشاورز مهربون و خوش قلب بود و همیشه به دیگران کمک میکرد. اونا فرزندی نداشتن و همیشه در حسرت داشتن یه بچه بودن. بالاخره آرزوشون برآورده شد و خداوند به اونا یه بچه داد که با همه نوزادا فرق داشت. وقتی مرد از دشت برای دیدن بچهش اومد با یه هندوانه کوچیک روبرو شد. زن کشاورز خیلی ناراحت بود و از آرزوی خودش پشیمون بود. هندبونه رو گذاشته بود یه کناری و گریه میکرد. کشاورز همسرش رو تسکین داد و گفت ناراحت نباش. حتما خداوند مثلت تو این اتفاق برای ما داشته. شاید منظورش این بوده که ما آرزوی بی کردیم. حالا بیا تا با همین هندبونه کوچیک و سبز رو بخوریم و شکر کنیم. فکر کنم خیلی هم خوشمزه باشه. به محض اینکه مرد با چاقو به سمت هندبونه نزدیک شد، هندبونه به زبون اومد و گفت: بابا منو نخورید، من فرزندتون هستم. زن و مرد از شنیدن صدای بچگونه هندبونه هیجان زده شدن و خیلی خوشحال بهش نگاه کردن. آخه تا به حال کسی به اونا نگفته بود بابا و مامان. کشاورز و همسرش هندوونه کوچیکو و بغل کردن و بوسیدن و اسمش رو گذاشتن شامیلک. شامیلک هر روز بزرگ و بزرگتر می شد و توی خونه قل می‌خورد و به مادرش کمک می کرد. هر روز نظافت محله رو خانوادهی به نوبت انجام میداد. وقتی نوبت خانواده کشاورز رسید شامیلک از مادرش خواست که نظافت محله رو اون انجام بده. مادرش اول قبول نکرد و گفت پسرم پدرت خودش از سر زمین که برگرده میاد و محله رو تمیز میکنه ولی شامیلک با خواهش و التماس مادرش رو راضی کرد شامیلک جارو به دست به سمت کوچه رفت و توی چشم هم زدن محله رو تر و تمیز کرد همه از این کارش تعجب کردند اما هیچی نگفتن یه روز پدر و مادر شامیلک به صحرا رفتند. شامیلکم توی خونه تنها بود و مشغول بازی. تو این زمان پسر پادشاه سوار بر اسب خودش به همراه سربازاش از اون دهکده عبور میکرد. اون تعریف شامیلک رو شنیده بود. به همین دلیل یواشکی و دور از چشم بقیه از دیوار خونه ای اونا بالا رفت و از دریچه کوچیکی داخل خونه رو نگاه کرد. اما صحنه عجیبی دید. دید که یه دختر زیبا و رعنا با موهای طلایی تک و تنها داره توی خونه بازی میکنه. اول باورش نشد و بدون اینکه چیزی به کسی بگه به قصر پدرش برگشت و به پدر و مادرش گفت تصمیم داره که با شامیلک ازدواج کنه. پادشاه و همسرش با شاهزاده جوون مخالفت کردند اما پسر پادشاه تصمیمش رو گرفته بود. اونا همراه ندیمه ها و سرباز ها با هدیه های زیادی اما از روی ناراحتی به خواستگاری شاملل رفتند روز عروسی تمام مردم دهکده دعوت بودند و شامل که هندهونه، با لباس عروسی کنار پسر پادشاه نشسته بود. هر کس اونا رو می دید می خندید. چون همه فکر می شاهزاده با یه هندوونه ازدواج کرده. روز بعد وقتی که پدر و مادر شامیلک برای دیدن بچهشون به قصر پادشاه رفتن به جای هندوونه با یه دختر زیبا روبرو شدن. زن و مرد کشاورز از شوق گریه کردند. چون فکر میکردن درباریان شامیلک را برای شام عروسی خوردن اما عروس جوان کنار پدر و مادرش اومد و موضوع رو برای اونا توضیح داد اون گفت چون شما دو نفر انسانهای پاک و درست کاری بودید خداوند در جواب دعاها و آرزوی شما من و داخل پوست هندبونه گذاشت و داد به شما اما این راز را فاش نکرد تا امتحانی برای ایمان شما باشه من همون فرزند شما شامل که هندبونه هستم وقتی خبر به گوش پادشاه رسید از خوشحالی دستور داد قصر زیبایی برای زن و مرد کشاورت کنار قصر خودش بسازند. تا برای همیشه پیش اونا باشن و در صلح و صفا زندگی کنند.